شو ماريه أقتادها أحكام القرآن أحكام القرآن. اشتمل القرآن على أحكام كثيرة متنوعة. يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. بفirmaيتك القرآن مشتمل هست برأحكام بسيار زيادة متنبئي. ومشيون أحكامات متنبئ روا تقسيم كرد قسم يك القسم الأول الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله تعالى وهذه هي الأحكام الاعتقادية ومحل دراستها في علم التوحيد. ميجي قسم أول أحكامات أحكامات كتعلق آخر الأحكام القرآنية أحكامها صنكت تعلق بعقيدة دارا ما نبي إيمان بالله وملائكه إلى آخر ميجي إنه أحكامات اعتقادي محل درس محل برسيشون. در علم توحيده. القسم الثاني، أحكامات نوع دومي كدر قرآن برسم شتيها سان، أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها، وهذه هي الأحكام الأخلاقية و دراستها علم الأخلاق أو التصوف. بجاء أحكامك التعلق بتهذيب النفس درت بباقي النفس. وإصلاح النفس، إن أحكامات أحكامات أخلاقية صن در علم اخلاق درس دارو مشان دوبرسي ميشان. القسم الثالث قسم سبب الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأف بأقوالي وأفعال المكلفين وهي المقصورة بالفقه والتي يحدث علم الفقهي وأصوله إلى معرفتها والوصول إليها وهذه الأحكام نوعان دي قدر شراشيد بيجي قسم السيد هم أحكامات قرآني أحكامات أملي هستن كي تألق بأقوال وآل مخذفين داران وإنها مقصورة بفقه هستن وإنها أنت زي هستن كي علم فقه و اصولات در رابطه با شناخت اینها کار میکنه و در رابطه با رسیدن به احکامات و خذن احکامات بر دو هستند یعنی احکامات فقهی احکامات فقهی بر تضاصن در دو ان دو الاول العبادات که صلات و صيام و الغرض منها تنظیم علاقه الفرد بالرب دو اول اولی فقهی عبادات چی هستند؟ مانند روزه و نماز و هدف از اینا چی هست؟ تنظیم کردن ارتباط اشخاص ارتباط فرد به پروردگاهش پس احکاماتی که احکامات عملی که تعلق به اقوال و افعال،, افعال مکلفی دارند که در فقه بحث میشن بر دو هند یک عبادات نماز روزه دو النوع ثانی ما عدل و تسمه با اسطلاح الفقهاب المعاملات آبا نوع دو بوم بغیر از عبادت که بهشون میگن معاملات آبا نماز روزه حج زکات، اینا عبادت هستن اینا چه هستن؟ نوع دو بوم كم مرتبط بأقوال وأفعال مكلفين حسن ودرع المفاق في قبارة سميشان مؤاملات حسن بغير هذه وهي تشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القانون الخاص والعام حسب الإصطلاح القانوني الحديث وهذه الأحكام يقصد بها تنظيم علاقة الفرد بالفرد أو الفرد بالجماعة أو الجماعة بالجماعة قداش سواشيد بيجي معاملات شامل احکاماتی میشند که در چارچوب قانون خاص و آن و طبق اصطلاح قانون جدید این احکامات منظور چون چه هست؟ یک تنظیم کردن رابطه شخص با شخص تنظیم کردن رابطه شخص با گروه، با مجتمع، با بقیه و همچنین تنظیم کردن گروه با گروه این نوع دنبو نوع اول تنظیم کردن رابطه شخص با پروردگاره آه؟ در عبادت نوع دنبو در معاملات تنظیم کردن رابطه فرگاپرده آقا در یک معامله فقر موقع میاد نظریه میده رابطه فرد با فردو یا تنظیم میکنه یا فرد با اشخاص دیگر یا گروهو با گروه های در معاملات هدف از احکامات اینه دیگه پس مختصر شماره 77 اینه که قرآن کریم احکامات متنوعی داره و میشه به سه قصد تقسیمشون کرد اعتقادات اخلاقیات و معاملات اعتقادات و أخلاقيات و معاملات هل قطاع دو حشت مياد بيان القرآن للأحكام بيان کردن قرآن أحكام رو قرآن بيان شكل بياد آقا أحكاماتو بيان میکنه قرآن كريم بيش شوية أحكاماتو شكار میکنه والقرآن الكريم فيه بيان لجميع الأحكام شرعيتي إلا أن بيانه على نوعه بيان قرآن كريم تمام احکامات شریعه رو درش بیانشونو میده ولی میگه که بیان قرآن کریم بر چنده بر تنو. النوّ الاول ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع و بيان الاحكام بصورة المجمله فمن القواعد والمبادئ العامة التي تكون اساسا للتشريع وتفريع الاحکام ما يأتي ببینید میگه قرآن کریم درش بیان تمام احکامات شرعی اومده است ولی این بیان قرآن بر دو نوعه یک قرآن کریم میاد یک قواعد و مبانی عمومی برای یا بیان میکنه میاد احکام رو به مجمل بیان میکنه و از اون قوائد و مبانی عمومی که اساس گذاری هستند و اساس شاخ شاخ کردن احکامات هستند یک شورا یک قاعده داده ها؟ قرآن میگه و امرهم شورا بینه امر مسلمانان مؤمنین این است که بینه همدیگه چی کار میکنند دو قانون کلی میده که آقا بر اساس چه باشند عدالت ان الله يأمر بالعدل الله دستور به عدل بده سی الانسان مخوب بجاريره ولا ولا يسالوا عن ذنب غيري ولا تزر وازره وزر اخرى قانون بعدینه که هر شخصی با کسب خودش مؤاخذه میشه و از گناه شخص دیگه پرسیده قرآن میگه هیچ شخصی گناه کسی دیگه را حامل نمی کند هیچ باروری بار, بار, بار دیگه را حامل پس قرآن بعضی از قواعدو شکل کلی داده دیگه نمیده جز جز در مردونشون بحث آقا ادالت باشه در مسائل تو شورا باشه در مسائل تو مثلا عبورات زندگی در عبورات زندگی العقوبة بقدر قدر الجریبه یه قاعده کلی دیگه ای داده اون چی میگه میگه عقوبت باید به با اندازه جریمه شخص باشه ها عقوبت باید و جزاء سیئته سیئته مثلها و جزاء سیئته سیئته مثلها و جزای بدی بدی است به خودش این آقا به اندازه هر جریمه رو به اندازه خودش با کار کرد نه مثل ما با که طرف طرف سیلی می‌زنه و میره با کلاش چکارشون کنه این کاری شرعی و اسلامی نیست قاعده کلی دیگه که بیان می‌کنه میگه حرام بودن مال دیگر ولا لا تأکلو اموالكم بالباطل اموالتان را بین هم دیگر به باطل نخور. آقا قرآن دیگه نمیاد تو خودش به شکل جز جز بیان نمی‌کنه که این خوردن به چه شکله؟ در سنت نبوی میاد بیان میشه. پس بیان کردن قرآن یا به شکل قوائد کلی در بعضی مسائل قاعده بیت میده. ادالت کن، شورا داشته باش، فلان داشته باش. و تعاون علی و ما فيه نفع للامه. قائدی دیگه میده. تعاون بر خیر. به شکل موجبل میگه. شما تعاون به خیر داشته باشید. اون کاری که در نفس در شراکت داشته باشید متعاونوا علی البر و التقوا و لا الاثم و شما تعاون بر نیکی و تقوا داشته باشید و بر گناه و عدوان تعاون نداشته باشید قاعده دیگه میکنه الوفا و و بیان میکنه الوفاء به الزام به التزامات کردن به تعهدات به آنچه که ملتزم شدی بهش پایبند شدی یا ایها الذين يعقونوا العقود ما بنان به عقده ها چیکار الحرج مرفوع ها حکم اجمالی دیگه اینه که میگه حرج برداشته شده حالا جایی که حرج هست و ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله متعال در قرآن میگه الله در دین بر شما حرجی قرار نداده قایده بعدی از ضرورت تبیح المحضورات اگه ضرورتها محظورات رو مباح بیکنه چیزای حرام رو چکار بیکنه مباح بیکنه ضرورت چیز حرام رو مباح بیکنه فمن اضطر طر غیر باغن ولا عاد فلا اتماله هر کسی مجبور شد ولی بدون بغاوت و تعدی و سرکشی گناهی برش آقا شما رفتی در بیابان و داری از گشتگی میبیری بی خب یه حیوان حرامی هم گیره تو غده این حیوان حرام در اون حالت ضرورت برا تو چی میشه؟ برای میشه پس توضیحش میده و من الاحکام الله تجاعت مجبه بارد میگه پس بیان کردن قرآن به دو شی یا به شکل اجمالی هست به شکل قاعده یعنی به شکل تفصیلی بیان لا يكُون. من سهرين مصائر التوزيدات وحكمين إدامة بحسم و من الأحكام التي جاءت من مجملة في القرآن الأمر بالزكاة ومثلها القصاص ولم يبين القرآن شروط القصاص وقد بينتها السنة. مِجَاءَ أَحْكَامٌ تِي كَدَرْ قُرآن بِشَكْلِ إِجْمَالِي أَمَدَّ أَنْ أَمْرُ بِالزَّكَاةِ قُرآن بِشَكْلِ إِجْمَالِي بَعْثُ الزَّكَاةِ بِرِدِّ. ولی این که از چند تا بوز یکی این که از چند تا از چقدر تلابی دید دیگه بیان تو قرآن نشده و مانند همین زکات هست مسئله قصاص بگه قرآن کریم شروط قصاص رو بیان نکرده سنت اومده شروط قصاص رو کار کرده؟ بیان کرده و کذالی البه و ربا همچنین مسئله معامله و ربا قرآن گفته که آقا ربا انجام ندید ولی تفصیلاتش کجا بیان شده؟ فجاءت صلة بيان البيء الحلاليه الحلالي وشروطه والربا والربا الحرامي وأنوائه. بيجي إن صلّت أسكوماديف معامله حلال وشروط شرب بيان كاردي. حرام وأنواعه. وهذا النوع من البيان وهو البيان الإجمالي وهو الغالب في القرآن. بيجي إنه نوع بيان قرآن يعني منزور بيان إجمالي قرآن. ای قابل هست د قرآن یعنی اکثر بیان‌های قرآن کریم از نوع همین نوع است. از نوع چیان؟ اجمالی اند. والحكمة في مجيء احکام القرآن على شكل قواعد عامه هي أن مجئها على هذا النحو يجعلها تتسع لما يستجد من الحوادث فلا تضيق بشيء أبدا. بج حكمة اين قرآن کریم میاد احکام رو به شکل قواعد عمومی بیان میکنه چه حکمت در این عمر چی بوده؟ که قرآن کریم اومده به شکل قاعده کلی بیان کرده میگه حکمتش این هست که اگر به شکل تفصیل بیان میکرد فردا روز یه چیز جدیدی سؤال جدیدی می میومد مسئله جدیدی پیشموند دیگه جوابی براش نبود ولی به شکل قاعده اومده آقا در قرن 21 شما مثلا یه چیز جدیدی پیش میاد حکم ربا با باتو به قاعده عمومی قرآن جواب شو بده در قرن 21 یک مسئله پیش میاد در مورد مسائل خانوادگی شما طبق قاعده کلی قرآن که میگه باغه طریق عدالت باشه بیاین اونو چکار بکنید حلش میکنید ولی اگر به شکل تفصیلی میگفت مثلا به دون مثال میگه آقا پرتغال حرام است مثلا سیب زمینی پرتغال حلال است سیب زمینی حلال است فلان حلال است به شکل جوزی اگر می گفت خب مثلا در قرن 21 یک درختی از اون سم که امریکا اومده در اسلامی. اسلام ما نمیدرسیم که این حلاله یا نه چون به شکل جوز ولی قرآن اومده قاله کلی داده نه پرتغالی نام برده و نه سیب درختی بلکه گفته خداوند چیزای تهیب رو حلال کرده و چیزای خبیثو چکار کرده حرام کرده پس ما میدونیم که موز جز چیزای طیبه ولی تریادی که تو حضرت نسی به بچت بدی جز چیزای چیه خویسه پس یکی از حکمت قرآن که میاد به شکل عمومی بیان میکنه اینه که مسائل نستجدهی که پیش میاد شما برای جواب دارید. همینه که دین هرگز کمره پس گفت که بیان کردن قرآن احکامات رو بر یا به شکل قواعد عمومی و به شکل اجمالی دو النوع ثاني الاحکام التفصیلیه و هی قليله في القران احکامات تفصیلی که در قرآن میگه کمند کم پیش در قرآن به كم شکل تفصیلی یاد احکامات یک مسئله چی بیان بشن و بینها مقادیر الموارث ازون احکامات که به شکل تفصیلی در قرآن بیان شده چیه؟ احکامات میراست آقا شما موعودیت قرآن را باز می‌کنید می‌بینید که مثلا بگه پدر سهمشید قدره، مادر سهمشیم قدره، برادر سهمشیم قدره آه، اونای که سهم دارند حالا برادر جز اسبع هاست خواهر سهمشیم قدره، خواهر مادری سهمشیم قدره، برادر مادری سهمشیم قدره، پدر بزرگ اینا رو به شکل تفسیری بیای تکریم کنه، بیان می‌کنه در سوره دسای، پس میگه نوع دوم، که اح... اه... اهمون اه... احکامات تفصیلی هستن بیان قرآن میگه این احکاماتی رو به شکل تفصیلی بیان کرده در قرآن کماند از جمله مقدار میراث و مقادر اقوبات در حدود و مقدار اقوبتها در حدود مقدار چی؟ اقوبت و کفیت طلاق و عدده کفیت طلاق طلاق در قرآن کریم در رابطه با طلاق بحث میشه بله و کفیت لعان بین زوجین مثلا کفیت لعان بین زوجین رو به شکل تفصیلی توضیح داده در, سو در ابتدای سوره نور آقا لعان چی هست به میگم مثلا مرد اومد زنش رو تهمت زند مرد اومد زنش رو چیکار کرد ببینید اگر یه غریبه غریبهی تهمت بزنه فرق میکنه. با بعد چهار تا شاهد بیاره وگر ند آسانش متفاوته اگر نیاورد شالله بساده میشه ولی اگر شخصی اومد زنش رو تهمت اومد زد مثل او قاید عبوبی نیست اینجا فرق کنه اینجا بهشون لعان بیشی میاد چهار بار مرد میگه که من راست میگم زن هم میگه که راست نمیگه و همدیگر رو لعنت میکنن و تفصیلاتی در ابتدای سوره مبارکه نور اومده این کار رو میشه دیگر لعان و این, و این تفصیلات برشد در ابتدای سوره مبارکه نور. که اگر کسی اومد زنش رو تو میذاد، چطوری ازاب ازش ده میشه در سوره نور و مجاز. به این مثلا میگن لی ها به چی دیگه زن میاد انکار کار میکنه و با آن کارو نکرد. مردم هم میگه که این کارو کردی. در آخر این ای میگه آقا لعنت خدا بر من باد اگر من دروب میگم اون هم میگه مختصر داستان میگه که لعنت خدا بر من باد اگر من دروب میدن اگر دو زن میگه اگر این راست میگه لعنت خدا بر من با آقا مردم میگه که اگر بیشی در چندین آیه اومده رحصش بیان شده ای این لعان رو که براتون باز کردن به که هنوز توفق نکنیدید و بیان المحرماتی من النساء زنانی که حرام هستن به شکل تفصیلی بیان شده در سوره مبارکه یا ها نه حرمت علیکم این آیه است در در ببینم در چه سوره اس حرمت یا بقره یا بقره هست <تصفيق> یا نسا هست بله آیه 23 سوره نسا هست شبه هم نه خرم تعالیم و مهمهاتو کن بیاد یک آیه بزرگی در آخر صفحه بیان میکنه که این و ضرور زن بر شما چه هستند؟ مادر زن بر شما حرام هست مادر بر شما حرام است، دختر بر شما حرام هست دختر دختران برادر و اله آخرون محرمات رو بیان میکنه پس مق... پس بگوییم که بیان کردن قرآن کریم احبامات رو بر چند نوعه؟ دو دو. یا به شکل اجمالی و قوائد کلی که اکثراً به این شکل هست شیوه قرآن کریم با توجب حکمتی که هم وجود داشت و دوم به بیان قرآن کریم تفصیلی هست که خیلی این نوع. احکامات قرآن کریم که بیاد به شکل تفصیلی بیان کنید خیلی چی هستن؟ کم هستن نه دیگه لعان که شد دیگه طرف حد برش ادراه نمیشه آه؟ لعان معنی لغویش؟ لعنت بله. بله. بله از هم دیگه برای همیشه جدا باشه همیشه؟ قرآن کریم میگه بابا قران کریم میگه که این دوتا زن و مرد دیگه برای همیشه از هم جدا میشن سختیه اومد زن و تو عابت توبه زده که با پولانی رابطه داشته اگه داشته باشه رابطه اگه داره باید طعام کوونه شاهد بیاری همین که دو تا اگر شاهد بیار که با سلام پیش نمیاد نه نه ايو بس انت طول مش هو الدكتور بيت ببعض حتى اصلا هو وجوده ما بابا ما تعرف دار سوغم يقولك ماين كارو ماكردم سوغم يقولك سوره نور میاد که اینو مفصل الان بهتون بیان کنم بهتره یه سب کل ابتدای سوره نور رو بیارم چون شما لعان و بلد نیستید الان الان یک لحظه یک لحظه سوره مبارک نور رو بیارم و ترق سوره مبارک نور آره یه دقت داشته باشید. ببینید ابتدا سوره نور در مورده بحث زنا که میاره بعدن میگه که قاعده کلی اینه که دقت داشته باشید قاعده کلی اینه که اگر کسی زنی رو اگر کسی مومنی رو تهمت زد قاعده عمومی چی میگه میگه باید تا شاهد بیاری اگر تا شاهد نیامرد هشتا چلاخ زده میشه چون تهمت زده این قاعده عمومیه ولی این قاعده بحث زن و مرد ها در آیه شیشون میگه اونهایی که زنانشون رو تهمت میزنند و شاهد ندارند جز خودشون و شاهدی جز خود ندارند اگه شاهد داشتن که مسئله جدایه و شاهد نداشتن اینجا چکار میکنند هر یکی از اینا چهار سوگند میخورن زن و مرد زن مرد. و مرد هر یکیشون چکار میکنه زمانی که طرف اومد زنش رو تهمت زد و چار شاهد نداشت خب آیا چی پیش میاد؟ دقت داشته باشید میگه کسانی که به همسرانشون تهمت میزنند و شاهد ندارن جز خودشون پس هرگی که از اونا میان چکار کنند؟ چهار تا سوگند میخورند بله زن چکار میکنه؟ زن چهار تا سوگند میخوره که آقا این شوهر داره چکار میکنه؟ دروغ میگه زن چهار تا سوگند میخورد که مرد رو بله چار چار بار سوگند میخوره بار پنجم میگه که لعنت خدا برمال باید باره سوگند چطور؟ سوگند مرد تو اگه قبول بکنه که دکه سلام اون موقع بحث بس فرق میکنه اون موقع دقت داشته باشید اینجا میگه کسانی که همسران خود را نسبت تومن بزنند و شاهد جز خودشون ندارد هر یک از بیاد چکار میکنه دقت داشته باشید میگه هر یک از اینا بیاد چار تا سوگند میخوریم بار پنجم میگه که بار پنجم چی میگه؟ اول کی سوگند میخوره؟ زمن. مرد اونی, اونی که تهمت زده آه. میگه اونایی که اومدن زنانشون رو تهمت زدند و جز خودشون شاهدی هم نداشتند اینجا هر یکی از اونا چهار سوگند میخوره هم زن و هم مرد مرد چهار تا سوگند میخوره که چی داره راست میگه مرد چهار تا سوگند میخوره که آقا در این تهمتی که بزنش زده داره چی میگه؟ راست, راست میگه بار پنجم میگه لعنت خدا بر من بعد اگر من دارم دروغ میگم به خاطر این به این مسئله میگن لعان بار پنجم چی میگه مرد؟ لعنت لعنت خدا بر من بعد اگر من دارم چی میگم؟ دروغ, دروغ میگم این کار رو که کرد اگر زن پذیرفت داستان چیزی دیگه است اگر این کار کرد باد سوگر اگر قبول کرد هیچی دیگه آقا حد برش اجرا میشه اگر زن امت اعتراف کرد دیگه چی میشه و اگر اعتراف نکرد برای حد برش اجرا نشه چه کار بکنه؟ بله این هم بعد بیاد چهار بار سوگند بخورد که مردش داره دروغ بگه این که ترتیب مهمه، مثلا زن مرد فقها در کتب تفسیراتی دارن، ولی من طبق ترتیب قرآن دارم بهتون میگم. مرد میاد چهار بار سوغان میخوره که آقا من دارم راست میگم. بار پنجم هم میگه که اگر من دارم دروغ میگم لانه تو خدا بر سر من باشه. زن اگر اعتراف کرد که خب داسان فرق میکنه. اگر نکرد زن میاد چهار بار سوگند میخوره <تصفيق> که این مرد داره دروغ میگه. و بار پنجم میگه غذاب خدا بر من زن باد اگر مرد داره راست میگه اگر مرد داره راست میگه غزب خدا بر من باد خب این کار رو که کردند خلاص از هم برای همیشه چی میشن جدا میشن این مسئله رو میگن مسئله لئان که شما متاسفانه لئان رو هنوز نخونده